بهشتی که میخوای بدید به من با منت زمینی که میخوای با هم بکنی قسمت حرفایی که زایده شده تو زهن دور میشه میش وقت ده پول و ثروت همون سلاحی که باش میخری لذت رفتن تو خرخر تو خفت خور رو پف بلند خواب قفلت نفرت دارم ازش به شدت هر زونی خودتون نچیک دارینا ندارین دوناتون رو تو که ما نکارین ما خودمون خورشیدیم خودمون بارون از دامن زرد بینالو تا لب سرخ کارون جوشیدیم کشیدیم ناشدیم تو شهرهای بزرگ و کثیف و شلوغ و طبیعت داغون تو دستمون خوردش کس های مرز قانون دون دادم رفیقم اونجالا چه شام خیابون زندگی خونگی و ماشینی تو نظونی خودتون و آدمای طورتون ما نبینی به ج جی ادف بسته پشت توجهتون نوی اخر این سیستم به ما تو راحتیم با همین ویلچر چیزی نگیریم ندادن تو پیش کش نمی گرفت گره ها را هراسش به تو دستای کودک کارو عبره خاکش سدی بالا سر ها رو گوش کمیش نویس صدای ناله های بده ها رو تو گور کردن سوزوندن زنده ها رو صدای جنگو تیر و تفنگو انفجارو چه شای مادر و نوای انتصارو مرز و وطن و پرچم و افتخارو این همه ظلم و جور و جه های همه چی ارزونیتون خیلی فرق بنزنزارتون بدم میاد از ابون بازیتون واصلاش های لاولای لا دندون تون ارزونی تون ارزونی تون خب ما خیلی ندیدیم که خوبیتون سراب که میگم سه شناس مسیر رومشه ما رو میدن تو بازی تون ارزونی تون بیچک و چون اون کلغ های که رسیدن بالاخر خونه ارزونیتون تون دونه بدون ارزی نمیمونه وقتی که شیتون استناد کنونه برف خوراک و سر میسازم ارزونی اما برا تمام حرفای دلچسپ دلشی کسا از اون سنگی سر بخاری کفه پا افکار غلط تو افکار غلطم آر تو بودی نزب با دین تنه و طلب افزارو که نمیدن آجی دست نوالت دوزا در نمیزنم میان با لکیت در میره با یه تققه تقواتون طق ارزونی یه لحظه عرضونی یه خونه دار بچه دار جانمونی نمونی میتونی کشم روشن کنی اگه میخواد تو این تاریکی نمونی